مصنوی معنوی مولوی برنامه 27م حکایت مشورت کردن خدای تعالی در ایجاد خلق مشورت می‌رفت در ایجاد خلق جانشان در بحر قدرت تا به حلق. چون ملائک مانع آن می شدند، بر ملائک خفیه خنبک می زدند. مطلع بر نقش هر که هست شد. پیش از آن این نفس کل پابست شد. پیشتر زفلاک کیوان دیدند، پیشتر از دانه ها نان دیدند به دماغ و دل پر از فکرت بودند به سپاه و جنگ بر نصرت زدند آن ایان نسبت به ایشان فکرت است ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است فکرت از ماضی و مستقبل بود چون از این دور است مشکل حل شود. روح از انگور می را دیده است. روح از معدوم شی را دیده است. دیده چون بیکیف هر با کیف را دیده پیش از کن صحیح و ضعیف را. پیشتر از خلقت انگورها ها خرده می ها و نموده شورها در تموز گرم میبینند دای در شعاع شمس میبینند فی، در دل انگور می را دیدند در فنای مژ شی را دیدند آسمان در دور ایشان جرعنوش آفتاب از جودشان زر پوش چون از ایشان مجتمع بینی دو هم یکی باشند و هم 600 هزار بر مثال موجها اعدادشان در عدد آورده باشد بادشان مفترق شد آفتاب جانها در درون روزن ابدان ما چون نظر در قرس داری خود یکی است وان که شد محجوب ابدان در شکی است تفرقه در روح حیوانی بود نفس واحد روح انسانی بود چون که حق رشه علیهم نور او مفترق هرگز نگردد نور او یک زمان بگذار ای همرا ملال تا بگویم وصف خالی زان جمال در بیان ناید جمال حال او هر دو عالم چیست عکس خال او چون که من از خال خوبش دم زنم نطق می خواهد که بشگافت تنم همچون مور اندرین خرمن خوشم تا فزون از خیش بار میکشم. کشم. شدن تقریر معنای حکایت به سبب میل مستمع و استماع ظاهر صورت حکایت. که گذارد آنکه که رشک روشنیست تا بگویم آنچه چه فرض و گفتنیست بحر کف پیش آرد و صد کند جر کند و بعد جر مد کند این زمان بشنو چه مانهی شد مگر مستمعی را رفت دل جای دگر خاطره شد سوی صوفی قنق اندران سودا فرو شد تا اونق لازم آمد باز رفتن زین مقال سوی آن افسانه بحر وصف حال صوفیان صورت مپندار ای عزیز همچو تفلان تاکی از جوز و مویز جسم ما جوز و مویز است ای پسر گر تو مردی زیندو چیز اندر گذر ور تو اندر نگذری اکرام حق بگذراند مرد را از نه طبق بشنو اکنون صورت افسانه را لیکه از که جدا کن دانه را حلقه آن مستفید چون که در وجد و طرب آخر رسید خان بیاوردند بحر مهمان از بهیمه یاد آورد آن زمان گفت خادم را که در آخر براو راست کن بهر بحیمه کاه و جو گفت لاحول این چه افزون گفتن است از قدیم این کارها کار من است گفت ترک آن جوش را از نخست کانخر پیر است و دندانهاش سوست گفت لاحول این چه میگوی مه از من آموزند این ترتیب ها گفت پالانش فرونه پیش پیش داروی منبل بنه بر بر پشتریش گفت لاحول آخره حکمت گذار جنس تو مهمانم آمد صد هزار جمله راضی رفتند از پیش ما هست مهمان جان ما و خیش ما گفت آ بشده ولیکن شیر گرم گفت لاحول از تو هم بگرفت شرم گفت اندرجو تو کمتر کاه کن گفت لاحول این سخن کوتاه کن گفت جایش را بروب از سنگ و پشک وربووتتر ریز بر خاک خشک گفت لاحول ای پدر لاحول کن با رسول اهل کمتر گو سخن گفت بستانشانه پشت خر بخار گفت لاحول ای پدر شرمه بدار خادمین این گفت و میان را بست چست گفت رفتم کاه و جو آرم نخوست از آخر نکرد او هیچ یاد. خواب خرگوشی بدان صوفی بداد. رفت خادم جانب او باش چند. کرد بر اندرز صوفی ریش خند. صوفی از ره مانده بود و شد دراز. خواب ها می دید با چشم فراز. کانخرش در چنگ گرگ مانده بود. کاره ها از پشترانش میره بود گفت لاحول این چی مالی خولیاست؟ ای عجب آن خادم مشفق کجاست باز میدید دید آن خرش در راه رو گه به چاه می فتاد و گه به گو گونگون می دید ناخوش واقع فاتحه می خواند و القارعه گفت چاره چیست یاران جستند، رفتند و جمله درها بستند. باز می گفت ای عجب آن خادمک، نکه با ما گشت هم نان و نمک. من نکردم با و الا لطفلین، او چرا با من کند برعکس کین؟ هر عداوت را سبب باید سند. ورنه جنسیت وفا تلقیم کند باز می گفت آدم با لطف وجود که بران ابلیس جوره کرده بود آدمی مرمار و کژدم را چه کرد کوه می خواهد مر او را مرگ و درد گرگ را خود خاصیت بدریدن است این حسد در خلق آخر روشن است باز می گفت این گمان بد خطاست بر برادر این چونین زنم چراست باز گفتی هزن سوء زن توست هر که بد زن نیست که درست ندر وسوسه بانخر چنان که چنین بادا جزای دشمنان آنخر مسکین میان خاک و سنگ کش شده پالان دریده پاله هنگ خسته از ره جمله شب بی علف گاه در جان کندن و گه در طلف خر همه شب ذکر می کرد ای اله، جو ها کردم کم از یک مشتکاه. با زبان حال می گفت ای شیوخ رحمتی که سوختم خام شوخ. آنچه آن, آن خر از رنج و عذاب مرغ خاکی بیند اندر سیل آب. پس به پهلو گشت آن شب تا صحر آن خره بیچاره از جو البقر. روز شد، خادم بی آمد، بام داد، زود پالان جست بر پشتش نهاد. خرف روشانه دو سه زخمش بزد، کرد باخر آن چزان سک میسازد خرجهنده گشت از تیزی نیش کو زبان تا خر بگوید حال خیش گمان بردن کاروانیان که بهیمه صوفی رنجور است چون که صوفی برنشست و شد روان رو در افتادن گرفت و هر زمان هر زمانش خلق بر می داشتند جمله رنجورش همی پنداشتند آن یکی گوشش همی پیچید سخت وندگر در زیر کامش جاست لخت وندگر در نعل او می جاست سنگ وندگر در چشم او میدید زنگ باز می گفتند ای شیخ این زیچیست دی نمی گفتی که شکر این خر قویاست گفت آن خر کو به شب لا حول خورد جز بدین شیوه نداند راه کرد چون که قوت خر به شب لا حول بود شب مصبه بود و روز اندر سجود آدمی خورند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. خانه دیو است دلهاوی همه، کم پذیر از دیو مردم دم از دم دیو آن که اولا حال خورد، همچون خر در سراید در نبرد. هر که در دنیا خورد تلبیس دیو و از عدوی دوست رو تعظیم و ریو در ره اسلام و بر پول سرات در سرایت همچون خر از خبات اشوهای یار بد من یو شین دام بین ای من تو بر زمین صد هزار ابلیس لا حولار بین آدم و ابلیس را در مار بین دم دهد گوید تو را ای جان و دوست تا چو قصاب کشد از دوست پوست دم دهد تا پوستت بیرون کشد وای او که از دشمنان افیون چشد سر نهد بر پای تو قصاب وار دم دهد تا خوند ریزت زار زار همچو شیر سید خود را خیش کن، ترک اشبه اجنبی و خیش کن. همچو خادم دان مراعات خسان، بی کسی بهتر ز اشبه ناکسان. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه تن خاکی تو، کس برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی فربهی بهی. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود، مشک را بر تن مزن، بر دل بمال، مشک چه بود، نام پاک زلجلال. آن منافق مشک بر تن مینهد، روح را در قعر گلخن مینهد. بر زبان نام حق و در جان او، گندها از فکر بی ایمان او، ذکر با او همچو سبزی گلخن است، بر سر مبرز گل است و سوسن است. آن نبات آنجا یقین آریت است، جای آن گل مجلس است و اشرت است. تیبا تایت بسوی تیبین، للخبیسین الخبیسات است هین، کین مدار آنها که از کین گمرهند، گورشان پهلوی کینداران نهند اصل کینه دوزخ است و کین تو جزب آن کل است و خسم دین تو چون تو جزو دوزخی پس هوش دار جز و سوی کل خود گیرت قرار ور تو جزو جنتی ای نامدار، عیش تو باشد ز جنت پایدار. تلخ با تلخان یقین ملحق شود، کیدم باطل قرین حق شود. ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخان و ریشه ای. گر اندیشه تو گلشنی ور بوَد خار تو هیمه گلخنی گر گلابی بر سر و جیبت زنند ور تو چون بولی برونت افکنند تبله در پیش اتاران ببین، جنس را با جنس خود کرده قرین، جنس ها با جنس ها آمیخته، زین تجانس زینت انگیخته، گرد آمیزند، عود و شکرش، برگ و زینت یک یک از یک دیگرش، تبله ها بشکست و جان ریختند، نیکو باد در همدگر آمیختند حق فرستادن بیا را با ورق تا گزیدین دانه ها را بر طبق پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم کس ندانستی که ما نیکو بدیم قلب و نیکو در جهان بودی روان چون همه شب بود و ما چون شب روان تا برآمد آفتاب انبیا گفت ای غش دور شو صافی بیا چشم داند فرق کردن رنگ را چشم داند لال را و سنگ را چشم داند گوهر و خاشاک را چشم را زان می خلد خاشاک ها دشمن روزند این قلا عاشق آشق روزند آن ذرهای کن. زن که روز از داینه تعریف او، تا ببیند اشرف تشریف او. حق قیامت را لقب، زان روز کرد، روز بنمایت جمال سرخ و زرد. پس حقیقت روز سر اولیاست، است، روز پیش ماهشان چون سایه هاست عکس راز مرد حق دانید روز عکس ستاریش شام چشم دوز زان سبب فرمود یزدان و زهها و زهها نور زمیر مصطفا قول دیگر کین زها را خواست دوست هم برای آنکه این هم عکس اوست ورنه بر فانی قسم گفتن خطاست خود فنا چه لایق گفته خداست لا اوهب آفلین گفتان خلیل کیفنا خواهد از این رب جلیل باز و لیل است ستاری او وان تن خاکی زنگاری او آفتابش چون برآمد ز فلک با شب تن گفت هین ما وضد پیدا گشت از عین بلا زان حلاوت شد عبارت ما قلا هر عبارت خود نشان حالت است حال چون دست و عبارت آلت است آلت زرگر به دست کفشگر همچو دانه کشت کرده ریگدر والت اسکاف پیش برزگر پیش اساکه استخوان در پیش خر بودن الحق در لب منصور نور بودن الله در لب فرع زور شد اسا ان در کف موسی گوا شد اسا ان در کف عساهر هوا زین سبب عیسی بدان همراه خود، در نیا موزید آن اسم سمت کو نداند نقص بر آلت نهد سنگ بر گل زنت و آتش کیجهد دست و آلت همچو سنگ و آهن است جفت باید جفت شرط زادن است آن که بی جفت است و بی آلت یکی است در عدد شک است و آن یک بیشک است. آنکه دو گفت و سه گفت و بیش از این متفق باشند در واحد یقین. احولی چون دفع شد یکسان شوند. دو سه گویان هم یکی گویان شوند. گر یکی گوی تو در میدان او گرد بر گرد از چوگان او. گویانگه راست و بینقصان شود کوز زخم دست شه رقصان شود گوش دار ای اهلین ها را بهوش داروی دیده بکش از راه گوش پس کلام پاک در دل های کور می نپاید می رود تا اصل نور وان فسون دیو در دلهای کج می رود چون کفش کج در پای کج گرچه حکمت را به تکرار آوری چون تو نا اهلی شود از تو بری ورچه بنویسی نشانش می کنی ورچه میلافی بیانش می کنی اوز تو رو درکشد ای پرس و تیز بندها را بکسلد وس تو گریز ورنخانی وا، ببیند سوزتو علم باشد مرغ دستا تو او نپاید پیش هر اوستا، همچو تاووسی به خانه روستا برنامههای های مصنوی معنوی مولوی را می و شهباز ایرج دهیه و اجرا کردند.